نظام شخصیت ایرانی بعد از مشروطه سرزمینی با انبارهای نفتی و موقعیت اقتصادی، جغرافیایی سیاسی و ژئوپلیتیکی حساس از بیرون جولانگاه سیاست متشنج بین المللی آن دوره و از درون گرفتار اوضاع آشفته و بحرانی بود. در این شرایط، بخش کوچکی از نخبگان ایرانی که واسطه تغییر بودند، از یک سو آرزوی آزادی و تجدد در سر داشتند و از سوی دیگر خواستار صبات، نظم و امنیت بودند. اما مشکل این بود که این نظم مدرن و آزادمنشانه به دلیل خلقیات سیاسی قالب از درون جامعه نمیتراوید. گروه های رسمی جامعه هویتها و نهادهای جدیدی که پس از مشروطه به وجود آمده بودند مثل مجلس، احزاب، اتحادی و مطبوعات نمی توانستند پروژه نظم درونزایی را راهبری کنند اعتلاف پذیری ناپایدار و وفاق ملی ضعیف بود منافع فردی با اجتماعی و مطالبات مسلکی، گروهی و قومی با مسائل عمومی به سختی می شد همگرایی و وفاقی که باید میان مسالح عمومی و منافع کشوری با مطالبات گروهی و قومی وجود داشته باشد ایجاد نمی شد. در چنین بو نوعی نوسازی اقتدارگرایانه به نمایندگی دولت پهلوی اول رواج یافت. قحطی، فقر، ناامنی و آشفتگی با هم ترکیب شده بود. نان و امنیت در صدر کالاهای کمیاب قرار گرفت. فقر پدیده عمومی بود و به ویژه در مناطق وسیع روستایی و عشایری کشور غلبه داشت. بخش های اقتصادی جامعه عبارت بود از سهمبری دهقانی ایرانی، شوانکارگی ایلی، خورده کالایی و بازار سنتی. اینها ظرفیت لازم را برای بهبود وضع نابسامان اقتصادی نداشتند و نمی توانستند برای پروژه پیشرفت و نوسازی کشور باشند. در نتیجه ابتکار عمل پروژه اقتصادی کشور به دست دولت و کشورهای خارجی افتاد. بازار سنتی با مخاطرات و ریسک‌های گذاری جدید صنعتی بیگانه بود و آمادگی گذاری سنتی نداشت. به این ترتیب میدان اقتصاد کشور برای بخش جدیدی فراهم شد که حاشیه‌ای اقتصاد جهانی بود و از طریق عقد قراردادها و نفت عمل می‌کرد و مرکز آن حکومت بود که تصدی رسمی فعالیت‌های جدید اقتصادی ایران را در دست داشت. در سال 1320، سهم تولید شبانکاری ایلی به شدت کاهش یافت و به 10 درصد رسید. سهم مناسبات سهمبری دهگانی هم به 50 درصد کاهش یافت، اما سهم خرد کالایی شهری بیشتر شد و به 20 درصد رسید. سرمایه داری هم به 20 درصد تغییر پیدا کرد. ظهور این اقتصاد جدید حاشیعی و زیر سایه دولت از دگرگونی های محسوسی در محیط نهادی جامعه ایران حکایت داشت اصناف، بازار و اقاف تحت نظارت و مداخله دولت قرار گرفت دولت از سال 1306، سیاست های مالیاتی، عوارض گمرکی، قانونگذاری، بانک ملی و پول ملی را پایگذاری کرد تجارت خارجی از 1309، به انحصار دولت درآمد. یک سوم واردات و یک دوم صادرات در دست دولت بود. با تصدیگری دولت، کارهای جدید و پروژه های زیرساختی بزرگ، مانند سازی، راه آهن و ارتباطات اجرا شد. ساخت آن نیز به شدت مستعد فساد بود. از سوی دیگر، رشد هم نامتوازن بود. تولید ناخالص ملی در سال 1319 نسبت به 1304 دو برابر شد که نشان سرعت تحولات در متن جامعه است. رشد و رفاه در قشر شهری و در یک طبقه متوسط کوچک اتفاق می‌افتاد. لوازم این تغییر افزایش قیمت‌ها تا حد دو برابر و کاهش قدرت خرید مردم بود. فقر عمومی در میان ایلات و روستاییان مشکل دیگری در این پروژه ها بود در نتیجه بخش بزرگی از جامعه به ویژه ایلات و روستاییان و توده های محروم شهری که نسبت به فرایند جدید بیگانه بودند در این تغییرات سحیم نبودند و شرکت نداشتند نوسازی دولتی پا به پای جامعه پذیری و فرهنگ پذیری کافی برای نوشدگی در متن جامعه همراه نبود در نتیجه نظام شخصیت ایرانی برای تحول و تعالی فرصت کافی یافت. شخصیت مجموعه ویژگی های فکری، ذهنی، زوغی و رفتاری اجتماعی است انسان موجودی اجتماعی است، هستی او دارای سازندهای روانتنی و اجتماعی است شخصیت او هم امری اجتماعی و به شدت تحت تأثیر محیط نهادی است نظام شخصیت یک ملت به طور شگفت انگیزی پیچیده و طرحی ناتمام است وقتی به دنیا می آییم، با خود خلق و خوی ذاتی و پیشینی به مسابه یک طرح نهایی نمی آوریم. البته تفاوت های فردی و مسائل ژنتیکی وجود دارد اما مطابق این نظریه طرح نهایی شخصیت انسان را دربر ندارد این موضوع در مقیاس اجتماعی بیشتر صادق است چیزی از پیش تعین شده و برای همیشه ثابت به مسابه شخصیت ایرانی وجود ندارد. خلق و خوی مردم پاسخ آنها به محیط نهادی و موقعیتی است که در آن قرار دارند. افرادی را در نظر بگیرید که به یک فروشگاه مراجعه می کنند. با متانت و رفتارهای سنجیده خرید می کنند. به آنها احترام می شود و آنها نیز رفتار محترامانهی دارند. کالاهای مورد نظر خود را انتخاب می کنند. مبلغ آن را می‌پردازند و می‌روند. اکنون همان مردم و همان فروشگاه را در یک موقعیت متفاوت تصور کنید. اگر مراجع کننده زیادتر و کالاهای ضروری کمتر باشد، به همه نخواهد رسید. فرض کنید فرصت دیگر و فروشگاه دیگری هم وجود نداشته باشد. افراد با ازدحام به سوی کالاها هجوم می‌برند، از دست هم می‌قاپند و با هم مشاجره می‌کنند. دیگر از آن فروشندگان موقر هم خبری نیست. روی چارپایه های استادند و از آن بالا با عصبانیت و عامریت بر مشتریان نظارت می کنند تا کاله ها را بدون پرداخت وجه با خود نبرند. مشتری ها داد می زنند، پرخاش می کنند و اگر بتوانند به یکی از فروشندگان می رسند تا هوایشان را داشته باشد و کارشان را راه بیاندازد. همان مردمی که با آرامش و متانت خرید می کردند، در وضع جدید رفتار دیگری دارند و پاسخ دیگری به موقعیت میدهند. خلق و خوی متحقق مردم پاسخی است به محیطهای اجتماعی و جامعه هر محیطی یک میدان بازی است بستگی دارد که میدان چگونه باشد هر موقعیتی یک منطق دارد وقتی اتوبوس سر وقت بیاید و برود و به قدر کافی وجود داشته باشد مردم در صف می ایستند و رفتار منظمی دارند به یکدیگر احترام میگذارند و ایستگاه آرام است اما وقتی تعداد آن کم باشد و مشکلات متعدد از جمله دیر اتوبوس وجود داشته باشد و همه بخواهد به کارشان برسند این عوامل دست به دست هم می دهند و مطابق منطق موقعیت مردم از سرکول هم بالا می روند تا جایی در اتوبوس برای خود پیدا کنند محیط های نهادی متفاوت میدان های متفاوت با قواعد بازی مختلف هستند و رفتارهای آدمیان در ارتباط با آنها به یک تعادل خوب یا بد میرسد هر محیطی موقعیت خاصی است و بازی خود را اختضا میکند با غور در منطق موقعیت میتوانیم خلق و خوی خود را بفهمیم برای اینکه خلق و خوی خود و همسایگان و همشهریهای خود را بفهمیم باید تاریخ سیر گذار و منطق موقعیت خود را تحلیل کنیم افراد و گروه ها در هر موقعیتی رفتارهای متفاوتی نشان می‌دهند. هر موقعیتی مستعد تکثیر، ترویج و رشد خلقخوهای ویژه با الگوهای رفتاری خاص است. پیشتر به تفصیل از وابستگی به مسیر بحث کردیم. خلقخوی ایرانیان امری ذاتی نیست. در مسیر تاریخی شکل گرفته است تا ساختارها تغییر نکنند رفتارها هم در مقیاس بزرگ اجتماعی عوض نمیش. آمیت و ساختار پس چه باید کرد؟ ره جامعه شناختی اخیر به تلفیق دیدگاه عملیت و ساختار رسیدند. فلک را سقف کافی و در اندازیم دیدگاهی ارادهگرایانه و رومانتیک است. سودای سربالا داشتن بسیار خوب است، اینکه دروغ نگوییم، مسئولیت پذیر باشیم، تملق نکنیم، شفاف باشیم، بیشتر کار کنیم، معقولتر مصرف کنیم و مولد باشیم. اما این ارادهگرایی بدون فهم منطق ساختار و موقعیت واقع گرایانه نیست. ساختارها در ما نفوذ می کنند، ما را در معرض آنتروپی و لختی قرار می دهند و در نتیجه، مشکلاتی برای اخلاقیات ما ایجاد می‌کنند. البته دیدگاه ساختار گرایانه گویی ساختارها و موقعیت‌ها برای همیشه به یک روال هستند. به لحاظ نظری چندان موجه نیست. دیدگاه تلفیقی عملیت و ساختار هم ساخت را می‌بیند و هم کنش و عاملیت انسانی را. ساختارها مهم و تعیین کننده اند و رفتار ما را شکل می‌دهند. ولی کنش هم هست و عملیت انسانی هم موثر است برای کنش به ساختار نیاز داریم ساختار فقط است. امکاناتی هم دارد از امکانات ساختار برای کنش استفاده می کنیم و دقیقا از این طریق ساختار تغییر می کند و زمینه می شود برای کنش های دیگر تفکر معکوس، هر نوع پروژه تغییر در خلق و خوب توصیعی محیط و تحول نهادها ها نیاز دارد. در واقع به نوعی تفکر معکوس نیاز داریم. باید ببینیم نهادهای ما چه ویژگیهایی داشتند که دوشار این نوع خلق و خوها شده ایم و این مسیر چه ویژگیهایی داشته که از طریق وابستگی به آن آدتواره ها، الگوهای رفتاری و خلقیات در ما شکل گرفته است؟ به عبارت دیگر چه تغییراتی در نهادها لازم است تا از این وضع به تدریج فاصله بگیریم این میدان از طریق شبکه درهمتنیده و ای از نهادها فراهم می‌شود دیدگاه علت العللی ساده و ناکارآمد است ما همواره به اسطوره علت العلل تمایل داریم و می‌خواهیم همه چیز را به علت العللی نسبت دهیم و به شکل خطی حل و توجیه کنیم در حالی که طبق دیدگاه شبکه ای، نهادها شبکه ای در هم تنیده هستند و محیط نهادی شبکه ای پیچیده ای از نهادهاست و میدان و موقعیت خاص برای رفتار مردم فراهم می‌آورد. برای توصیع محیط نهادی باید شبکه ای فکر کنیم نباید ساده و خطی و علت نگاه کنیم و راه های انقلابی و فوری و نخبه گرایانه را جستجو کنیم تجربه تاریخی، یافته های نظریات بشری و تحقیقات به ما می‌گوید وقتی با نگاه علت الالی خطی و ساده می چیزی را به منزله علت پیدا کنیم و با تغییر انقلابی و راحل های فوری و به شکل نخبه گرایان محیط را تغییر دهیم تا اصلاحاتی در رفتارمان ایجاد شود به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. آنهایی که خطی و ساده نگاه می کنند می علت مشکلات ما، استبداد بوده و این امر سبب شده دروغ بگوییم، تملق کنیم و مسئولیت ناپذیر و خودمدار شویم. از این منظر اگر به هر صورت نخبهگرایانه انقلابی، سریع و قهرامیز تکلیف استبداد روشن شود، مشکل ما هم حل می شود و زمستانمان بهار. اما به نظر می رسد استبداد هم در یک شبکه قابل فهمتر باشد. استبداد گرهی سفت از یک کلاف پیچیده است. به یک رویکرد شبکه ای و طرحی آهسته و پیوسته و در این حال کلگرایانه نیازمندیم. باید همه جانبه و شبکه ای نگاه کنیم و طرحی ژرف و مشارکت جویانه و نه نخبه گرایانه بجوییم. همه باید در این طرح آهسته، پیوسته، همه جانبه و گسترده مشارکت کنند. روح اصلی این طرح شامل تغییر رفتار و ساختار هر دو است رفتار یک طرف سکه است که طرف دیگرش ساختار است اگر می خواهیم رفتار عوض شود باید ساختار عوض شود این تغییرات طولانی مدت ساختاری و اجتماعی یک طرح آهسته پیوسته گسترده جرف و مشارکت جویانه و نه نخبه گرایانه را می تلبد. از طریق انباشت این کنشها کنش, ها. کنش هایی که به تغییر ساختار و رفتار معطوف است و عملکردهای های تکرار شوندنده آنها ساختارها تحول پیدا می کنند و پا به پای ساختارها رفتارها هم تغییر می کنند چون مردم هم در تغییر مشارکت دارند تغییر پروژه ای طولانی و همه جانبه است است پروژهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، شهری، محلی، اجتماعی، آموزشی، فکری، بخشی و میانبخشی. تغییر و تحول طرحی گسترده است که به حضور فعال کنشگران و نیز مشارکت فراوان مردم نیاز دارد. از طریق این کنش‌ها عملکردها تکرار می شود و از طریق عملکردهای تکرار شونده ساختارها و رفتارها پا به پای هم تحول می‌یابند. رفتارها تحت تأثیر محیط نهادی هستند، ولی نه در یک مدل علی خطی، زیرا خود رفتارها و کنشها نیز می توانند در تحول نهادها در یک مقیاس زمانی بزرگتر تأثیر بگذارند. در هر حال، به تعبیر نیکلسون، اگر رفتارهای مطلوبی می خواهیم، باید در پی اصلاح عمیق نهادها و محیط نهادی مطلوب باشیم.